فصل 18 عیسی برای آنان مثلی آورد تا نشان دهد که باید همیشه دعا کنند و هرگز دل سرد نشوند او فرمود در شهری قاضی بود که نه ترس از خدا داشت و نه توجهی به خلق در همان شهر بیوزنی زندگی می‌کرد که پیش او می‌آمد و از دست دشمن خود شکایت می‌کرد قاضی تا مدت زیادی به شکایت او توجهی نکرد اما سرانجام پیش خود گفت درست است که من نه ترسی از خدا و نه توجهی به خلق خدا دارم اما این بیووزن مایه دردسر من شده است و برای اینکه با اصرار ابرام خود مرا به سطوح نیاورد به داد او خواهم رسید عیسی خداوند فرمود آنچرا قاضی بی انصاف گفت شنیدید آیا خدا به دادخواهی برگزیدگان خود که شب و روز به درگاهش تضرع کنند، توجه نخواهد کرد؟ و یا برای کمک بانها تعجیل نخواهد نمود؟ بدانید که او به زودی و به نفع آنان دادرسی خواهد کرد، اما وقتی پسر انسان میآید، آیا اثری از ایمان بر روی زمین خواهد یافت؟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 هفته ای دو بار روزه میگیرم دهکی که همه چیزهایی را که به دست میآورم میدهم اما آن باجگیر دور استاد و جرأت نگاه کردن به آسمان را نداشت بلکه به سینه خود میزد و میگفت ای خدا به من گناهکار ترحم کن بدانید که این باجگیر بخشوده شده به خانه رفت و نه آن دیگری هر که خود را بزرگ نماید خار خواهد شد و هر که خود را فروتن سازد، سرفراز خواهد گردید. مردم حتی بچه ها را به حضور عیسی می آوردند، تا بر آنها دست بگذارد، اما شاگردان وقتی این را دیدن، آنها را سرزنش کردند. اما عیسی بچه ها را پیش خود خوان و فرمود، بگذارید بچه ها پیش من بیایند، و مانع آنان نشوید. چون پادشاهی خدا به چنین کسانی تعلق دارد. یقین بدانید اگر کسی پادشاهی خدا را مانند یک کودک نپذیرد، هیچ وقت وارد آن نخواهد شد. شخصی از اشراف یهود از عیسی پرسید، ای استاد نیکو، من برای به دست آوردن حیات جاودان چه باید بکنم؟ عیسی به او فرمود، چرا مرا نیکو هیچ کس جز خدا نیکو نیست، احکام را میدانی، زنا نکن، قتل نکن، دزدین نکن، شهادت نادرست نده، پدر و مادرت را احترام کن. مرد جواب داد، من از جوانی همه اینها را رعایت کردم. عیسی وقتی این را شنید فرمود، هنوز یک چیز کم داری. آنچه دارید بفروش و میان فقرا تقسیم کن که در عالم بالا، گنجی خواهی داشت و بعد بیا از من پیروی کن. اما او از این سخنان افسرده شد چون مرد بسیار توانگری بود. ایسا وقتی این را دید فرمود چه دشوار است ورود توانگران به پادشاهی خدا. رد شدن شطر از سوراخ سوزن آسان است تا وارد شدن توانگری به پادشاهی خدا. شنوندگان پرسیدن، پس کی می تواند نجات یابد؟ پاسخ داد، آنچه برای آدمیان غیر ممکن است، برای خدا امکان دارد. پتروس گفت، ببین، ما از همه چیز خود دست کشیده ایم و پیرو تو شده ایم. ایسا فرمود یقین بدانید که هر کس به خاطر پادشای خدا، خانه یا زن، برادران، والدین یا فرزندان خود را ترک نماید، در این دنیا چندین برابر عوض خواهد گرفت و در آخرت حیات جاودان نصیب او خواهد شد. ایسا دوازده شاگرد خود را به کناری برد و به آنان فرمود ما اکنون به ارشلی می رویم و آنچه انبیا درباره پسر انسان نوشتن به حقیقت خواهد پیوست. او به دست بیگانگان تسلیم خواهد شد. او را مسخره خواهند کرد. و با او بد رفتاری نموده به رویش آب دهان خواهند انداخت او را تازیانه زده و خواهن کش اما در روز سوم باز زنده خواهد شد اما شاگردان از این همه چیزی نفهمیدن، و این سخن برای ایشان نامفهوم بود و درک نمی‌کردند که درباره چه چیز صحبت می‌کند هنگامی که عیسیا به نزدیکی اریها رسید کوری در کنار راه نشسته بود و گدایی می‌کرد همین که شنید جمعیتی از آنجا میگذرد پرسید چه خبر است؟ به او گفتند، عیسی ناصری از اینجا میگذرد. پس فریاد زد، ای عیسی، ای پسر داوود، به من رحم کن. اشخاصی که در جلو بودند، به تندی با او حرف زده گفتند، ساکت باش، اما او هرچه بلندتر فریاد می کرد. ای پسر داوود، به من رحم کن. عیسی ایستاد. و دستور داد آن مرد را پیش او بیاورن. وقتی آمد از او پرسید چه می خواهی برایت بکنم؟ جواب داد ای آقا می خواهم بار دیگر بینا شوم. ایسا به او فرمود بینا شو ایمانت تو را شفا داده است. فورا بینایی خود را باز یافت و در حالی که خدا را تمجید می کرد، به دنبال ایسا رفت. همه مردم، به خاطر آنچه دیده بودند خدا را حمد گفتند.